فصل شامزده در آغاز، داستانی که کوزیما درباره چگونگی مرگ شوالیه تعریف کرد به شکل دیگری بود. و این هنگامی بود که باد کرجی را به کنار آورد و او به کمک ریسمانی خود را از بالای دکل کرجی به درختی در آن نزدیکی رساند. اپتیموس مکسیموس سر بریده را همچنان به دهان داشت و او را دنبال می کرد. برادرم گروهی از مردمان را گرد آورد و این داستان ساده را برایشان تعریف کرد که دزدان دریایی شوالیه را روبوده و کشته بودند. بیشک در فکر پدرمان بود که با شنیدن خبر مرگ پیرمرد و دیدن سر بریده او چه حالی میشد. هنوز دلش نمی آمد با سخن گفتن از بدکاری شوالیه به قصی پدر دامن بزند. حتی بعدها انگامی که از پریشانی باران خبر یافت کوشید افسانه افتخارآمیزی افتخارامی زیب برای برادر ناتنی او سرهم کند. چون این تعریف کرد که گویا اناسیلویوس نبردی پنهانی و دلاورانه را برای سرکوب دزدان دریایی در پیش گرفته بود و آنان با خبر شده بودند و آنگونه سنگ دلانه از او انتقام گرفته بودند. حقیقت این است که افسانش پر از تناقض و بی سر و ته بود. زیرا و مجبور بود برخی نکته ها را نگفته بگذارد از جمله انبار کردن کالاهای دزدی در قار و یورش زغالکاران را اگر از یه موضوع سخنی به میان می آمد همه مردم امبروزا به جنگل می ریختند تا آن کالاها را از زغالکاران پس بگیرند و آنان را به دزدی متهم می کردند. پس از چند هفته ای که از ماجرا گذشت و کوزیمو مطمئن شد که جنگل نشینان قنیمت های خود را خورده و چیزی از آن باقی نگذاشته اند بر شد که داستان تاراژ قار را بازگو کند و کسانی که به امید پس گرفتن بخشی از آن کالاها به جنگل رفتند، دست خالی برگشتند. زغالکاران دست آن شب را به برابری میان خود پخش کرده و هر آنچه را که باقی مانده بود در یک میهمانی بزرگ همگانی خورده بودند. بخور بخوری که یک شبان روز ادامه داشت. پدر من پیر شده بود. قصه‌ی مرگ اناسیل از اثر شگرفی بر خلق و خوی او گذاشت. دچار این وسوسه بیماری گونه شد که نگذارد کارهایی که برادر ناتنیش می کرد بی سر انجام بماند. دست به کار زنبورداری شد و به خوبی از پس آن برمیآمد. گرچه تا آن زمان حتی کندوی را از نزدیک ندیده بود. از کوزیمو نظرخواهی میکرد که در این باره بررسی‌هایی کرده بود. بیان که وانمود کند که میخواهد چیزی از او بپرسد بحث را به زنبورداری میکشید و آنچه را که کزیمو در این باره میگفت خوب گوش میکرد. سپس همان را با لحنی خشمگین به صورت دستور به کشاورزان میگفت. لحنش چنان بود که انگار همه باید آن چیزها را میدانستند. آن چنان از نیش زنبور میترسید که هیچگاه به کندوها نزدیک نمیشد. اما میکوشید نشان بدهد که میتواند بر این ترس چیره شود و خدا میداند که در این را چه رنجی میکشید همچنین دست به کار کندن برخی آبراه ها شد تا کاری را که اناسیل ویوسن نگون بخت آغاز کرده بود به پایان برساند. از آنجا که شوالیه بینوا هیچ کاری را به انجام نمی بسیار جالب می بود اگر یکی از ترهایش عملی می شد. ولی علاقه دیرهنگام بارون به کارهای عملی چندان نپایید. روزی از روزها که با حالتی عصبی کار می کرد و هم گرفتار زنبورها و هم گرفتار آبراه بود بر اثر یک حرکت ناگهانی دستش دو زنبور به سوی او پریدند. ترسید: دستهایش را بیتاب بان تکان داد و کندوی را سرنگون کرد. انبوهی از زنبور دنبالش کردند و او که کور از دست آنهاها میگریخت به درون آبراهی افتاد که تازه پر از آب کرده بودند. کارگران بیرونش کشیدند بستریش هم از نیش زنبور و هم از آن آبتنی ناخواسته دچار تبی شد که یک هفته او را از پا انداخت. پس از آن به چنان حالی افتاد که دیگر یارای بلند شدن نداشت. دیگر از تخت خواب پایین آمد. هیچ علاقی به زندگی نداشت. در هیچ کاری موفق نشده بود. مدتها میشد که از عنوان دوکیش خبری نبود. پسر بزرگش با آنکه برای خود مردی شده بود، همچنان بالای درختان بذر می‌ برادر ناتنی را کشته بودند. دخترش شوهر کرد و به سر زمینی دورده است و نزد کسانی رفته بود که از خودش هم نخواستنی بودند. من کوچکتر از آن بودم که بتوانم همدم او باشم. همسرش بیش از اندازه خشک و سخت گیر بود. به پرت پلاگویی افتاد. می گفت ایان خانه را اشغال کردهاند و او دیگر نمی تواند از اتاق خود بیرون بیاید. سرانجام همانگونه همان که زندگی کرده بود، درگذشت. بادلی پر از حسرت و کینه و ذهنی انباشته از خیال و وسواس پوزیما از بالای درختان تابوت او را دنبال کرد اما نتوانست از در گورستان پیشتر برود شاخه های سرو آنچنان نیست که به از آن بالا رفت از همان بالای دیوار آین خاک سپاری را تماشا کرد و هنگامی که ما هر کدام مشتی خاک روی تابوت ریختیم نیز او شاخه پربرگی را روی آن انداخت با خود اندیشیدم که همه من همواره دور از پدرمان زندگی کرده بودیم و آن فاصله چه از بالای درختان و چه از روی زمین یکی بود پس از آن عنوان بارون رندو از آن کوزیمو شد با این همه زندگیش هیچ دگرگون نشد درست است که سرپرستی داراییمان را به دست گرفت و به اداره آن پرداخت اما حضورش همواره حالتی شبه داشت. هر بار که کارگران یا کشاورزان کاری با او داشتند، نمیدانستند کجا پیدایش کنند. ولی هر بار که دلشان میخواست سر و کارشان با او نیفتد، از لای شاخ و برگ درختی پیدایش میشد. برای پرداختن به کارهای خانوادگی هم که شده بود، بیشتر از پیش به شهر میرفت. بالای درخت گردوی بزرگ وسط میدان یا بلوتهای نزدیک آنجا میگرد. مردم به او احترام می‌گذاشتند و او را جناب بارون می‌خندند. و همان روز که نزد جوانان دیده می‌شد، گاه خوش داشت حالاتی پیر به خود بدهد. و برای گروهی از امراضیها که پای درختش گرد می‌آمدند، داستان‌هایی از اینجا و آنجا تعریف می‌کرد. از بازگو کردن داستان مرگ اموی ناتنی من خسته نمی‌شد و هر بار آن را به روایت ها زیم رفته رفته از همدستی شوالیه با دزدان دریایی برده برداشت و برای اینکه از نفرت مردم به او بکاهد، داستان زعیر را نیز تعریف کرد که مدعی بود پیرمرد پیش از مردن برای او گفته است. در نتیجه همه برای شوالیه دل سوزاندند و سرنوشت قمنگیز او اندوهگین شدند. برداشت من این است که آنچه کازیم تعریف می کرد در آغاز داستانی ساختگی بود که پس از دگرگونی ها و بازسازی های پی در پی به حالتی کمابیش واقعی در آمده بود. دو سه بار توانست داستان را به همین گونه بازگویی کند. ولی از آنجا که امبرازایی ها از شنیدن آن قصه سیر نمیشدند و شمار شنوندگان هرچه بیشتر بیشتر میشد و همه نیز خواستار جزئیات بیشتری بودند، رفته رفته به آن شاخ و برگ می‌داد. می کرد و داستان را کش میداد و آدم‌ها و رویدادهای ای را به آن می‌افزود تا اینکه از شکل آغازین خود نیز، ساختگی تر شد. کوزیمو کم کم دارای گروه شنوندگان علاقمندی شده بود که هر آن شراکه که با دهان باز گوش می کردند. رفته رفته از حرف زدن خوشش آمد. زندگی درخنشینی و شکارهایی که می‌کرد، ماجراهای ماجرای جوانی خلنگ و اپتیموس مکسیموس بهانه به دست او میداد که داستان‌های بی پایان به و تعریف کند. بسیاری از رویدادهای زندگی او در این کتاب به صورتی آمده است که خود او خوش داشت با شاخ و برگ بسیار برای شنوندگان عام تعریف کند. از این رو پوزش میخواهم از اینکه همیان می می‌نویسم همواره با واقعیت سازگار نیست و با جریانات دی رویدادها و کار انسان ها هم خالین ندارد. برای نمونه گاه پیش می‌آمد که کسی از میان مردم از او میپرسید؟ ارباب راست است که پایتان هیچ وقت به زمین نرسیده؟ و کزیما در پاسخ داستان درازی را آغاز می کرد. چرا؟ یک بار. کلبت اشتباهی بود. چون پایم را روی شاخه گوزن گذاشته بودم. فکر می کردم پایم را روی شاخه افرایی گذاشتم. اما نگو که گوزنی بود که از زمین شاهی فرار کرده و لای درختها ها بی ایستاده بود. همین که سنگینی مرا روی شاخهایش حس کرد، لابلای درختها پا به فرار گذاشت. گفتن ندارد و خودتان بهتر از من می دانید که بالای شاخهای حیوان چه تکانی میخوردم؟ حس میکردم دل و رودم دارد سوراخ می شود. از یک طرف تیزی شاخ گوزن به تنم فرو میرفت و از طرف دیگر شاخهای پرخار درختها سر و صورت هم را میخراشید. حیوان پیاپی جست و خیز می و میخواست مرا پایین بیندازد اما من شاخهایش را محکم چسبیده بودم. از گفتن باز می ازداد. شنوندگانش بیتا با نمی چه شد ارباب؟ خودتان را چطور نجات دادید؟ و او هربار داستان تازی سرهم می کرد. گوزن رفت و رفت و خودش را به گلش رساند بعضی از ها با دیدن من بالای شاخان یکی پا به فرار گذاشتند. بعضی های دیگر دیوانوار حمله کردند. میدانید که همیشه تفنگم را همراه دارم؟ دست به تفنگ بردم و هر را که میدیدم میزدم. پنجه تایشان را کشتم. یکی از جند پوشند که به داستان گوش میکرد از دیگری که در کنارش بود میپرسید. تا حال در منطقه ما پنجه تا گوز دیده شده؟ نسلشان همان روز ور افتاد. میدانید چرا؟ چون همه گوزنهایی که زدم ماده بودند. گوزنی که سوارش بودم به طرف هر کدام از آنها که میرفت من با تیر می زدمش. هیوانگیج شده بود و دیگر نمیدانست چه کار کند این بود که تصمیم گرفت خودش را بکشد خودش را به لب پردگاهی رساند و خیز برداشت و به پایین پرید اما من شاخه درخت کاجی را که درست در همان لب پرتگاه بود گرفتم و نجات پیدا کردم یا اینکه تعریف می کرد که نبرد سهمگینی میان دو گوزن درگیر شده بود که یکدیگر را با شاخ می زدند و او پیاپی از روی شاخه یکی به روی شاخ دیگری می پرید. تا اینکه بر اثر ضربه سر یکی از آنها به هوا پرتاب شد و روی شاخه های بلوطی فرود آمد. خلاصه اینکه که دوچار شور و وسوسه داستان پردازانی شده بود که همواره در انتخاب میان خیال یا واقعیت دودلند و نمی‌دانند چه داستانی شیرین تر است. داستان رویدادهایی که به راستی به سر آدم آمده است و یادآوری آنها انبوهی از لحظه ها و احساس های گذشته شادمانی، دلزدگی، درماندگی، سرفرازی، نفرت از خیشتن را زنده می کند؟ یا داستانهایی که آدمی در ذهن خود می پروراند؟ داستانهایی که همه چیز در آنها آسان جلوه می کند، اما هرچه در آن پیشتر می روی، به گونه گریز ناپذیری به واقعیت نزدیکتر می شوید. کزیمو هنوز در سنی بود که شور داستان پردازی در آدمی به شکل شور زندگی در می آید. دوری که میپنداریم هنوز آن اندازه زندگی نکرده ایم که بتوانیم سرگذشت خود را تعریف کنیم. از همین رو بود که به شکار می رفت، هفته ها ناپدید می شد و سپس به بالای درختان میدانگاهی برمیگشت. گشت و هر بار چندین خز و روباه و شقاره را که شکار کرده بود همراه داشت و به تعریف داستانهای خود برای مردم می پرداخت. داستانهایی که در جریان بازگویی رفته رفته خیالی می شد. و دوباره از حالت خیالی به شکل واقعی در هر تب و تابی از نیاز ژرفتری خبر میدهد که برآورده نشده است. نشانه یک کمبودی است. نیاز کوزیمو به داستانگویی نیز نشان میداد که او چیز دیگری را جستجو می کند. هنوز عشق را نمی شناخت. بیشناخت عشق تجربه های دیگر به چه کار بدون شناختن مزه زندگی به خطر انداختن آن چه سودی دارد دختران جوانی که کارشان باغبانی یا ماهی فروشی بود از میدانگاهی عمروزا میگذشتند دختران خانواده دار سوار بر کالسکه، می آمدند و میرفتند. کوزیمو از بالای درخت نگاهی سرسری به آنان میانداخت. در هر کدام از ایشان چیزی بود که کوزیمو آن را جستجو میکرد. بیان که هنوز به درستی دلیل آن را بداند اما چیز در هیچ کدام از آنان کامل نبود شبها هنگامی که چراغ خانه ها روشن میشد گاه در کنج شاخه ای نشست و به عشق میندیشید با دیدن جفت هایی که در پس بوته ها یا میان تاک ها به دیدن یکدیگر میرفتند دلش پرست های شقبتته می شدد با نگاهش دنبالشان میکرد که در تاریکی ناپدید می شدند. اما اگر چشمش به جفتی میافتاد که در نزدیکی درخت او روی زمین دراز میکشیدند شرمزده میگریخت برای آنکه بتواند بر این حیای طبیعی چیره شود به تماشای جفتگیری جانوران پرداخت در بهار در سراسر بیش بیشهزارها جشن عروسی برپا بود سنجابها با هم میامیختند و حركتها و جیغهایشان حالتی کما بیش انسانی داشت پرندگان پرپرزنان با هم جفت می مارمولکها مارمولک ها هم چنان که به هم پیوسته بودند و دومهایشان گره خورده بود میگریختند. پرهای جوجه تیغی انگار برای هم آغوشی نرم نرمابری شمین میشد. اپتیموس ماکسیموس که هیچ شرمی نداشت از اینکه تنها سگ پاکوتاه امراضا بود از سگهای درشت چوپان و گرگی های تنومند خانگی دلبری میکرد. گاهی با سر روی زخمی برمیگشت. اما یک عشق پیروز برای جبران همه آن شکست بس بود. کوزیمونیز نمونه یگانی از یک نجاد کمیاب بود. هنگامی که چشمان باز جغدوارش را به نقطهی خیره می کرد و به خیال بافی می نشست، در پندار خود با زیباترین دوشی زگان هم نشین می شود. اما چگونه می در بالای شاخه های درختان به عشق دست در آن پندار ها تا آنجا پیش می رفت که دیگر مکانی در کار نبود. نه از زمین خبری بود و نه از شاخه های بلندی که روی آنها جا داشت. جایی را در ذهن خود مجسم می کرد که هیچ جا نبود. جایی که برای رسیدن به آن نه به پایین که باید رو به بالا می رفتی. یعنی شاید درخت آن چنان بلند که اگر از آن بالا می رفتی به جهان دیگری به ماه می رسیدی. هنوز چنان درختی را نیافته بود و داستان هایی که در میدانگاهی میگفت و میشنید روز به روز کمتر مایه خوشنودیش میشد در بامداد یکی از روزهای بازار مردی که از شهر در آن نزدیکی آمده بود با دیدن کازیمو گفت اهه! شما هم که از این اسپانیایی ها دارید! از او پرسیدن منظورش چیست؟ و او در پاسخ گفت در با یک دسته اسپانیایی یند که همشان بالای درخت زندگی می کنند از آن پس کزیم و دیگر آرام نداشت می خواست هرچه زودتر از راه جنگل خود را به آنجا برساند. Thank you.